اعوذ بالله من الشیطان الرحیم اسم الله الرحمن الرحیم و صلی اللہ علیه سید و رسول الله و آله طیبین و طاهرین المعصومین و درد جرعین و حمد اجمعین اللهم و جمعی المشتغلین و رحمنا یا ارحم الراحمین دو مناسبت یک حدیث واحدی که در کتاب تشکیه آمده بود راجع به ثبت همان نحمر و نیه هاشن دیگه یکی مقدار متعرض جهات سندی این روایت شدیم که خب این مداری خالص شدیم از دست از شد که این روایت البته تقریباً اندرش به لحاظ سند واضحه که ضعیفه یه بسید یک توضیحی رو از رو راجع به این مسئله. در اول سند همونطور که در دیدید درباره کشیه هست مصعب بن صلاح یا صدبا وارد شده این راجع به استاد نجاشی که حسین بن احمد بن باشه من حالا حدیه خوندم بعد از نسخه چاپی شافی و حبده هست اینا حالا این درست اون درست چون کلن این شخص نمی‌شناسین ما حبده اسم داریم بیزه حبیب اسم داره کوسه که اسم داره ادم های اهل سنت اما ابن خود اما این خود این شخص دقیقای چیه این حدیه خوندر من نه اینکه که زبط رو مخواستم احضب کنم زبط نه گفتیم یک کمی از بحث خارج شدیم واجبه فواهدی که در اینجا هست چون یک زبط فواهد جنبی هست که شاید این زبطی رو متعرض نشیم به این بحانه مقدار فواهد جنبی رو متعرض شدیم کلمات علما رو راجع به نصر سباه یا سباه از کرده مرموم نجاشی اسمشون رو برده و تضیف کرده گفته من به ارتفاع مذهب و کتابی را هم به ایشان نصبت داده دو, دو تا کتاب مرموم شیخ هم این سرقیش ایشان نبوده این استاد نجاشی رو ایشون درد نکرد نیم دونیم اصلا من تعبیل درس نکرده تعبیل درده این درد یعنی از اون نقل نکده حالا چرا کن نمی آیا زمانش مساعد نبوده اعتقاد بهش نداشته نمیدونیم چون این حسین ابن احمد ابن هدوه یا هدیه و اصلا کلن نمیشنسیم هیچ آشنایی با ایشان نداریم آشنایی ما با ایشان منحصر به اینه در چند مورد در کتاب نجاشی فقط ایشان از توسط از ایشان از این ابن هدیه یا ابن هدوه از ابن غولری نقل میکنه این کل آشنای ماست هیچ چی دیگه دیه نمیشناسيم هیچ آشنایی نداریم البته چیزایی از ابن غولبی نقل میکنه با اینکه مذهوم شیخ مفید شاگرد ابن غول ایشون نقل نمیکنه یکی دو مورد م چیزایی نقل میکنه که شیخ مفید م نقل اصلا مث شیخ مفید وه ابن هلیه از ابن غلب لكن موارد داره از ابن قوله به که اصلا شیخ مفید نظر میکنه کنه شیخ طوسی هم از ابن قوله نظر نمی کنه شیخ مفید پس این میرات ابن قوله بین بی بی در صورت بحث نشده من می بحث کبروی رو شه چون این بحث نشده نمی شن هارونی که شاد نجاشی و رجال یا مشایخ نجاشی وردن خوسی نه دن. ابن حبیب حسین در یک مورد نجاشی هم حسین نه محمد آن. از جهات دیگه دو مورد یک مورد مورد حسین بن احمد اومده به نظرم شاید درست‌تر باشه یکم مثلا ابو عبدالله ابن حدیه آمده تعابیرش مختلفه شاید مثلا ده موردن در موردش نشه احسا نکردم کردم قانون کانکورس هر هنری شده این یه استایم فیک داره نشی بکنه احصاء کامل نکردم وکن چیزی در دارم بدونم ده مورد نمیشه این ها اسمش چیه جنسش چیه کی؟, کی هست چرا مرحوم شیخ سروسی از ایشان نقود؟ نمیدونیم هیچی به خبر نداریم یه خبر مطلقی چون از این شخص هیچ اطلاعی الان در مسادر ما و مسادر عبدالس و اطلاع نداریم الا به همین چند موقع پیدا کردنا در کشن... نجوشیم الا <تصفيق> از تو تاویل مختلفه ابو عبدالله ابن حدیه داره حسین مثلا البحسین محمد داره کنگی مختلف در حاضر نحنیه دارد تابیرش مختلفی یک تابیر والد ندارد تابیر متعدد داره کلن این آر نمیشنسیم و میرات ابن قولوه که در بغداد بود من توضیحاً ارز کردم ابن قولوه حضرش خومه پدرشان ساکن قم بود ایشون بعضها به بغداد آمدند و در سال 368 در بغداد فوق شدم ایشون یکی ای که از دوقات محروفه کتاب کافی هم هستن از که از روا کنا معروف کافی در بغداد ابن بازم این رو من الان چیزی هم حضور ذهن دارم الان, الان این لحظه حضور ذهن ندارم تا آیا کافی رویشون در قم شنی و در بغداد تحدیث کرد یا در خود بغداد از قولی الان حضور ذهن ندارم 7 مورد هست که اثرات جهالت محمد باشه و همشون این ابن هم شیش این به ده تا لطفشی این ولی رضا خوب دقت کرد هر چوری که ابن هدیه باشه دیگه مطمئن باشه اون کتاب رو لاحق به اونطری شیخ طوسی نایوورده. بیا از اختصاصات نجاشی. ممکنه مثلا فرض اگر اون طریق رو مرحوم مفید اورده باشه شیخ ممکن داشته باشه. اما از طریق از هدیه شیخ طوسی نداره. من از کردم نسبت بین مشایخ شیخ خیستی و مظهومه نجاشی در بحث فهرت در بحث اجازات و فهارس از ها عموم خصوص, خصوص منوشیه و که عموم خصوص منوشیه که انقراض نجاشی خیلی زیاده یک در شعرهای معروفه هم که فقط نجاشی از اونها نرم میکنه شیخ از اونها نرم می غیر معروف ایشان <تصفيق> ابن هدیه یا ابن قدوه این هم فقط نجاشی نرم می تا اونجایی هم که من دیدم که ایشون مراه خوندن تماما از ابن قولوهی نرمی کنم و بعضی هم غرابت داره اینا رو ما حس میکنم یه نه حسیه باز این که غرابت مثلا من ندیدم ابن قولوهی از کشی نرمی کنم اینلا تو این سند حالا ابن قولوهی در قب بوده کشی رو دیده همون زنده نمیگونه چی جور پیش آمده تو این سند ابن قولوهی این از از کشی ن ابن قولوهی از مرموم کشتی حرم میکنه که اونه اسانی دیگری که من دیدم ندیدم ابن از کشتی نهر بکنه حتی توی کامل زیارت نداره که از کشی نهر بیترمی اینجا داره حالا این نقطه پندیش اینه نقطه پندیش یه ازیه قائل هستن که مشاعف ابن قولوهی صفاتن اگر کسی این قارب قایل شد اسم کشی رو اضافه کنید <تصفيق> به لیست مشایفه مردم بن قولوه اما این استادش بودنش اینجا آمده در روایات نداریم و اصلا خود ما هم همونی خارجی نمی که چی جوری مرموم کشی مردم ابن قولوه پسر از مردم کشی نرکرده باشه بله در کتاب کشی خود کشی از پدر ابن قولوه نرکرده باشه به دارم قوم آمده باشه مگه تو همین سقری که ق مرحوم ابن نه نقل کرده شاید بعدا زر مثلا کشی زریف ویل کرده نقل ویل کرده خود زریف نیست یعنی کتابش خالی از زرم نیست این اجازه رو به مرحوم شیخ مفید ندازه خب خیلی خوبه که باقی اجازه شده کتاب کشی رو خیلی خوبه الان که کماکات اینها ها هایی است که برای ما در اینجا وجود داره که وضع کار ما رو روشن نمیکنه. این راج یک مطلب بود جمعکی به نجاشی و شیخونه ها ارز کردیم مرحوم شیخ هم مطالب گفتوز کنهای تحریر کردیم گفتیم درست مطالب بیشون تهم بلند نیست و ارز کردیم از قرن یازده به بعد هم در مباحث رجالی ما قبلش یواشه ها شروع شد که واقعا الفض و فیزال جود رو به مرحوم محقق اردویلی قدس الله موسیقی مرحوم اردویلی اولین که سیست که در این اولمای ما خیلی چیزا در طرف مسلم بود شروع که انا دو مرتبه دو مرتبه تجنظر جدید کردن بس اون دایگزو بیان نگست دو مرتبه تجنظر این کجا این اجماع این اجماعی که گفته دقیق کردید قبل ایشان ارسال مسلمات شده بود مثلا شیخ توسی توی کتاب ناخذ دایگزو بیان نگست این هم ارسال مسلمات رو بین اطفاق اللهم هم از تقریبا اولین چهره ای که ما میدونیم ایستاد و دکت کرد که این حرف من کجاست در بین علمه ما مقدس هرده و به ها رو فرمون کنم مقدس همه حق محقق هرده ها... بیدید رو... بعد از سال پیل بحث هم داره یعنی چیزهای نکات جدید که خب در کلمات شاید و شایدش مرمون صاحب مداره صاحب معالم مخصوصا مداره واضح میشه ایشانا این جدی این یواش و از قرن درمون توی شیعه این بحثا چون رجال شیعه مثلا فرسون همون نجاشی بود بعد ابن داود نوشت سر سیدم تاووز محولا برشاگرده ابن داود و علامه تقریبا همه حرف سابقی بعد از اینها هم که آماده شیعه در تقریبا همه را علامه بردن چون ابن هم خیلی غلط داره کتابشون یه کتاب عجیب غریبیه خیلی کتاب, لطیفیه. یعنی کتاب ابن زده ها زرافت های خاص در جالی و فوالدش لطیفه اما نمی‌دونیم حالا میگن بعضی‌ها میگن خودش فرکت بوده بد نوشته. بعضی میگن مستنسخین بد نوشتن قبلت قلوت جا زیاد داره. یعنی در هر سطحه ایچن. مثلا میگه کشت در, در کشینی در نجاشیه. میگه جشت تو نجاشینی تو کشی. این جشت هست. این کتاب روز خیلی جابجا شده. یعنی در جا به جا شده یع چیزی دیگه ای شده یا ناسخ بدقلمی نوشتی یا خودیشان میان بدقلم اما واقعت این از این اشتباهات ها خوب دارد تا قرار خلوط غیر این هم داره اخصاص به این موارد نیست اما کتاب علامه جمع وجودتر بود تقریبا توی اصحاب ما مثلا دیگه اندامه کتاب در رجال نوشت یه توش فهرست نداره چون محروف بود کتاب اولیه مثلا فهرست شیخ و اصول خمسه میگن. دوستش کہتے ہیں رجال رجالی مصادر تشیع خود فهرست نجاشی دیگه اعلامی کتب چون مصادر فهرست نجاشی هم مطالب و برادرش مصادر فهرست شش مصادر کتاب دارن رو نو طریقون به کتابش اینا هم حذف کرد شد یک کتاب تقریبا میشه گفت رجالیه دیگه تقریبا شکل رجالی متعارف گرفت کتاب خلاصه اعلام و غلط الفی ابن داوود دا ابن داوود یک مقدار زمانه مقدمه و کتاب اعلام مخرج شد لذا دقیق بفهمید مثلا فرض کنید این که کتاب ابن قدریه فرضاً مثلا سعی کرد تحقیق که مثلا چقدر از علما روی رجال ابن حساب کردن محمود به معنی کی مرقوم هر ببینید مرقوم فرضشون درسته این اختصاص نداره از زمان علامه تا حدود 100 قرن سال قبل کتاب ابن قدریه این کلی این بعد تو جالی نشر امجان حدیث و از موارد رجالی این من زاویزه چه عرض که شما حالت تعبد در کلمات نگی چون اونا رو ذکر به کتاب علامه قبل از علامه آرا ابن غزالی مطرح نبود اصلا بحث رجالی مطرحه نه والا آراش مطرح بشه آرا ابن غزالی در حدی بود که مرحوم نجیاشی 232 مورد تصریحا در کتاب فهرست خودش اول اسم احمد بن حسین رو از دی از وقیل و ربیع در و نوقدره که احتمالاً ابن قزاری باشه دیار به این صورت پس آرا ابن قزاری مطرح هارو علامه کرد نه علامه مثلا بعد هم از وی اوورد که مطرحی است خود بحث ابن قزاری مطرح کرد روشن شد اصلا خیر تاریخ نه ایشون فرحند خودمون طلب باشید چی از وقتی که علامه مطرح کرد تا حدود 150 سال, سال رفت بعد این خیلی طن به زده این ممکنه سنی باشه این خودش چیه؟ هست تا حدود و سال قرم سد ای سال بعد هر کسی در شیعه آمده بحث جلی نوشته حرف علامه رو برده. این خلاصه بزرونی بگه نمیخواد 20 به شما بودید سی نقرد برسرین در سور تاریخ ما اسم ازن قضایی رو بردن از سال هفت سد ای تا حدود سال هزار سیست ای هر کسی متعرضه بحث رو نداره شده کلام ازن این که شیل میگه معروف قدم قرده شیل هم داری؟ این که معروف قدم قرده شد. این که از مقداری نه نه نه معروف زمانی هنو زمانیشان معروف نشد. گفته شده همه معروف. دعد از این زمانها یه یواش شبا شد. به اعلام مثل بحران و دیگران. هر کسی جواهر اینا که آوردن اگر متحرشدن زحفای ایمون قطاری. اینا هم اولان عرب ازوان از سالهای هزار دیوی سه هزار ساده هشتا ساده شی، علمای شیعه یکی فرص مرحوم محمد فرصه محمد صاحب جامعه روات محمد اردبیلی، یکی خود مرموم وحید بهبهانی تقریبا بحثه پخته ترش در تعلیقات مرموم بهبهانیه مرموم بهبهانی شروع کردن تحقیقه این برای اطلاع شما بر منابع شیعه منابع شیعه خیلی نافعه یه سه قرنه تقریبا اگر مقدس تعدیل اولیگی بوده 4 قرنه تن شعر یواش یواش میگفتن تو بحث های رجالی اضافه کردن به اون چیزی که داشتن مثل همین علان شما نگاه کردین آیخویی اضافه کردن گفت تا اون وقتی نکردهن که نرسیدن تا با قاضیه این مناقشه رو دارید میگه ایشون شو خالیه داره که خیلی چند نفر رو ایشون مناقشه کرده خالی خودش که اگه خالی باشه اون مناقشه بعد آقای خویی هم دارم من اون جواب توضیح بده از چیزایی که بعد اضافه شد که آمدن که نکته و ضعیفه این هم بعدها اضافه کردن به قول آقای نهی و ولکنه من از منظر تاریخی میگم این کار نبوده که علامه کرده خب این مان روزه صدوقه یک قبل از علامه است دقت بکنه الانه همون کاری روی کرده که نجاشی رو شیخ توسی کردن بعدی که هم کارون همون هم کاردن بله بعد, بعد از اون بعد از قرن 11 ها, 12 ها، یه روایتی در کتاب کمال الدین شیخ صدوق که مرحوم صدوق نقل میکنه از ابن الولی استادش از سر ان علی ابن محمد رازی نمیشنسیم چه شخصی ان نصر ابن سباه بلخی ظاهرا همین شخص باشه ظاهرا. آلکانه به مرد از که اسم مرد هم برده اون طرفه احتمالا کارتبون لخوزستانی احتمالاً مراده از خوزستانی زندگی در که از وکلای حضرت بوده که ساکن خوزستان بوده به خاطر شراز تقییه اسم رو نبردن که معرفی نشد کارتبون لخوزستانی بعد اون علی ابن محمد بوده یه سماحولی نصر نصر اسمش برد یک نفر در مرد نماینده نماینده بودند گفت که بدل و بدل ایشون نماینده خوزستانی بوده و شننده بود در این شخصی که به مرغ بوده الف و دینار له ناحیه اکثر شواهد نشون میده از زمان امام هادی به سامره رفت ناحیه چون حضرت تحت هر شدند خودشون ایشون امام عسکری شیعان قادر تا بغداد میوندن با اوکرا در برزا تونسو گرفتن سششارنی یعنی جناب نرس میگه این با من مشرارت کرد فقل تو اب اصلاحا علال حاجزی این حاجزی هم الان نمیشنسیم حالا ممکنه حاجری هم باجی نمیشنسیم هم باشیم ممکنه چند جور خونده بشه چند جور هم نرشته شده این حاجزی رو فعلا نمیشنسیم احتمالا به خاطر شرایط سخت تقییه مخصوصا اون مبنایی که ما عرض کردیم احتمالا به سواهی نو ولو سیاسی باشه و حرکت اجتماعی داشته شاید تان کلی چهره خودش رو مخفی بکنه اسم افراز رو نداره کسانی که با اون رابطه داره اسم اونها رو نداره فقال اون شخص من گفت من هزار دینار رو به خان به حاجی هوفی اون وقت این سعلنا لاحظه وجل یوم تو به میگیریم میگیری پول رو من با عاجزه حاجی بدم در روز که به عده میگیری تو نه بل من به فقال نصر نصر نصر با میگه فقارت تو علازال جدا شدن سم من تو الیه بعد سنرکن بعد دو سال باز اون آقا رو دیدم فلقیتوهو فسألتوه ان المال پرسه چکار با این هزار دینار فذکره انهو بحث من المال معتی دینار علال حاجزی چون اون زمانه که میعه عدبیاتوش کموزیاری من امزن میکندم که با متون اون زمان هم آشنا بشین گفت من از این هزار سال دیویستایی پنجه همشه برستادم به حاجزی فورد علیه وصول ها اسم حاجزی هم باید نمیبرد قبض وصول از طرف حاجزی میاد و دعاء لح بعد از این نوشه کتب علی قیر از این مطلب نوشته کان المال و دینا فبعث به معفی دینا یعنی به کرامتی یا معتزهی هم هم گاشت رو که اصل معلوم اونقدرش 500 تا دراستی نیست. هم برخطم بشید. فینا احببت انت عامل احدن فاعمل الاسدی به ری. اگر می بعد از این پول بفرستی، کاری انجام بدی با اسدی. این اسدی چون در ری معروف دیگه سره کده اسمش نبره. این محمد بن جعفر اسدی است. چند بار هم اسمششونو گوردیم. ایشون یک وکیل فون قلعه قنیث و به حسابایی که ساکن ری شده بود ایشون در اینقدر خیلی از احل کوفه ایرانی هستن زبان عربی گرفتن ایشون نه عربی سمینه از از از بنی اصد باغن اصدیه ساکن ری شد به عنوان نشت دعوت تشیعه در ری و کاملا در تقییه این راوی روایت زیاد جامعه هم ایشان همین محمد بن جعفر اصدی یا محمد بن ابی عبدالله در کتاب مرمومه کلینی گوید از چینا میبره محمد ابن عبی عبدالله کلینیشون درد برد فهم اخبت انتو آمله اهدم فعامل اصدیه به اگر خواستی طرف معامله به اصدیه مراجعه کن چون اونم با محمد ابن ها در رابطه بود در این معنی چیه معنی این عباره من این اعبه اینه اون آهای حاجزی که وقتی بوده من به این که ژونست نشان ننوشته ماام نمیشانیم پیدام. اضافه بر بعد اینکه خبر داده پول هزار دینار بوده تو دوی تاش میخواد به او خبر بده بعد از این دیگه به حاجزی دییم مراجعه حاجزی حاجی کنه. به اصطلاح این اعلام وفات حاجزیه دیگه حاجزی وجود نداره شما اگه موه پول بدید دست خربی روشن شد. این ز واره، که این احباب تن تا آمله احد هست یعنی ای بعد از این توسط حاجزی نمیتونی پول بفرستی توسط اصدی محمد نجه اصدی لذا قال نصر و ورده علی نعی و حاجز و خبر دیم که حاجز خوب کرده این مخواد بگر کنیم مخواد به این طرف بگیم که این حاجزی واقعا وکیله چون هم به لگ مال خبر داده هست. هم خبر داده که حادیزی فوت میکنه این اون طرفی که حساب بوده فوت میکنه و بعد از اون مبالغ المالیس رو ترسط محمد نجیح پر اصدی به من بفرست و برای دهلی و حاجز فجزه تو انزال که درن شدید هم این طرف حساب تمام شد بله اون به من گفت اون طرفی که پول پیشیش بود اونا رو من گفت گو من خیلی ناراحت شدم وقتم هم که مقمومم شدم و قلطوله من این قالمه سش اشتباه و قلطوله کشی از کردم بعد عبارتی زیاد داره سخت و غلط و غلط و جاوی جایی زیاد داره چرا همین نصحی جمارتی دید کنه و قلطوله ولیمه پس هم چرا قصه میکنیم و تزد وقد من الله و تعالی علیه به دلالت این دو تا حلامت رو برستاد یکی قد اخبره که به مبلغ مال و قد نه حاج بزن مختلف خبر داد نه خبر مرگ هی تیسی و نه ای اینگه برست داد در لغت. خبر مرگ حاجزی رو هم مختلف بدونید تو سوال بکنی از ناحیه مقدسه این محلب آمد این روایت که نصر اینو رو کرده یه ازیانه مختلف از این معروض میشه که این مثلا جلالت داره مقام داره،, داره و روا ای زن باز روایت دیگه از ابی مرگوم صدو قال حضرتان از سعد از همین علی بن محمد رازی این علی بن محمد رازی شدید یک نوع تبلیغ برای محمد ابن جعفر اصدی رازی شون ساکن ری بود, ری بود. قال حضرتان این از سمن سبا قال انفذ رجل من اهل برخ خمسط دنامیر اله حاجز و کتب رغعتن و غیر فیها اسمه یک یا حاجز آمده یا حاجزی آمده هر جوربیات ما نمیشنستیم این ها رو هم تصفیق مرکن فخرج علیه الوصول بسمهی و نسلیهی و دعا علم من البته احمال دمیم این خرجی هنه یعنی افراد ناهی از ناهی به از ناهیه به اصطلاح چیز از ناهیه سامن را این خرجی اول هم مراد همی باشه این دوتا حدیث که در کتاب کمال الدین آمده این مثلا دوتا حدیث رو حتی امثال انلامه هم بشتن و جوی نکردم بعد از قرن 11 و دوازده در کتاب رجالی ما آمد من اینها رو عمدن بگم که سیر کار رجالی براتون روشن بشه هر کتاب رجالی که میخونیم جایگاهش برای نیوازه جایگاه تاریخی روشن بشه و معنون بشه که مثلا کمبودهای ما چیه؟ کم و زیادی های ما زیادی چیه؟ اینا در کتاب البته ذکر توقیات وارده عن الخاتم علیه السلام ورده این ورده باید از زمان نادیه در اینجا مراد چیزی باشه خود امام زمان باشه یا مراد از زمان امام هادی باشه این دو تا روایت تعصب شده به این دو روایه برای جلالت قلب ایشون آیا خود فن عقول لازم که فی هات این روایتین امروان نسبت صبا کان معتبرن به امامت امام ثانی اشاره راست اینه یعنی ما هم که خوبییم خردش، خوب حالا که خوندن برات. نهش جلالت در میاد، حسنم در نمیاد. این ممکن یک بقال شیعه باشه. میگه آو این آو بده. میگه از اینکه که گفته هوفی او شاید مثلا بگه مشهور بوده. مثلا آدم سرشناسی بوده، آدامی بوده که احترامی داشته. مثلا از این کلاغی هوفی عناغت، از این هیچ چیزی در نمیاد. و لا ذا منافق قلوب دهن. اونم با نری و حسن, حسن اصطلاح رجالی در نمیاد حسن به استلاحه. اما معنوم میشه که شخصیتی بوده یعنی نقطه بوده که طرف گفته تو به گردن میگیرید من گفتم بله به گردن میگیرم این اینش شاید نازلن حالا مشکلی که ما داریم اینه که این روایت الان دو تا روایت در کتاب اه... کمالدین آماده که کتاب دست دوگومه به اصطلاح مرحومه صدوقه همین مضمون همین مضمون در کتاب کافی آمده سمه و از این مضمون روایت اولا رواق شیخ شیخ در کتاب غیبه در ذکر سفراه ممدوهی با عنوان حاج زلوش شیخ این روایت را رو از کلینی آورده. الان در کتاب کلینی نیست در کتاب کافی نیست من یه توضیحاتی رو سابقا از کردم اینه در ذهن داشته باشید آدم ها در ذهنش باشه برای طلبش خوبه بره به کلتی کتابو دست اونها رسائل الهیمه نامه‌هایی رو که ائمه نوشتن ایشون جمع این کتاب ها حدود زمان سنتوس قرن 7 ازش خبر داریم سنتوس این کتاب نقد میکنه بعد ازش از کتاب خبر نداره من اسمش رو یادش نمیاد چه یلدزنت به ممکنه چون شما از این کتاب‌های معتبر دنیا مطلع دارن که صراحت ندارن کنار بذشتن نه اولی کتاب معین نه آخری کتاب ممکنه به که ما بعد این کتاب رساله درنده پیدا بشه در میان مقصودی که در دنیا هست این کتاب الان چندین قرن در مصادر ما موجود نیست این کتاب اگر پیدا بشه به احتمال قوی خیلی از این نامه‌هایی که در نهج البلاغه امیرالمومنین از این کتابه همین نامه‌ای که امیرالمومنین به ما حسن در نهج البلاغه هست مفهوم سنتوت از این کتاب نه کنه از کل این. از همین کتاب مستند از این کتابه و ظاهرا مرحوم کلینی قدس الله نفسه اون چه که مربوط به بقیت در باب ولادت ایشان و امامت ایشان و دلالت ایشان و باب و تصمیت مهره ها بابی در کافی اینها رو تو کافی اوورده توقیات رو تو اون کتاب اوورده ظاهرا اینطور باشه این من چرا رفت کردم؟ چون در کتاب کمالدین صدوق یا قیبت شیخ توسی همه رو در یک کتاب آوردن. در کمال دی، اون که منظور به وجود امام زمان و تولد و بعد توبیات هست این تو کمال الدین تو توبیات آورده مرحوم کلینی ظاهرا باید اینطور باشه که به از این تفسیر ظاهری بنده فعلا که ندادم ظاهرا باید اینطور باشه مرهوم که مرحوم کلینی اون چیزی که مربوط به وجود ایشونه امامت ایشانه تو کافی آورده اون که مربوط تو به توبیات ایشون صورت سالنه آورده بعد کافی نوشتند نمی‌دونم دقیقا طر کتاب میتونم چهاقه نوید چه اتلیف ها وثر اینکه این, که این طوبیه معروف و سر حوا سال واقعه طربی و, واقع و فیی ازاد هم از کافی نه از کل این ن این هم در کافی موجود نیست. و از ها با عنوان تنه براشش رو میشین کل نروغ در کافی نباششه. به ذهن من میاره حتی این توع مشهور هم تو اون در سال رنده اوده د احتمالی که من الان میدم و این رساله در اختیار کلین در اختیار صدوم بوده زارم در اختیار شفتوسی هم بوده میگم تا زمان مرموم سیلو در اختیار ایشان بوده نه رو پده الان از این کتاب ما خبری نداریم و در اونجا اینطوره طوره محمد ابن ان احمد به یوسف ساسی این تحریف کلمه شاش از بلاد م... که این کمان معروفی هم داشته از این میگفتن، مال این شهری در بلاد مغلانه نظر را که قبل اکیستان یکی از این کشور را شده خیلی معروف به کمان بود این معلیس نیسا بوده قالمی محمد نرحسن الکاتب المروزی شاید این کاتب همین باشه محمد نرحسن و جهد اله هاجز الوشا معتق بینا این قصه رو کلیگی هم داره لیکن توش دیگه نصر ابن سواه نیست با توی این روی توی این که ایشان نرد کرده نام نصر ابن سواه کلن وارد نکده از شخص دیگه این نرد کرده حالا این هم نمیشنسیم محمدد حسن کاتل مروزی رو هم نمیشنسیم حاج دل وشا هم نمیشنسیم اون آقا احمد ابن یوسف رو هم نمیشنسیم افرادی از هم و طبیعی ن بله بعد آیا خوییم انشا الله مکتذ از دلک اند نقل حدیث احمد می‌یوسف دونه نسخه مسافو این داره سیسم داشت خ از خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ نداره که. خ خ خ از خ احمد خ خ خ اون خ خ کرده خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ خ اسم خ هم خ خ اونجا خ خ خ این خ خیلی روشن نیست اون وقت بقیه خوناشی اون یک مثلی رو استاد در زیر ترجمه او من ازش رو پرم آلتا استاد که این شخصیت مثل شبیه نست اینقدر طولانی صحبت نمیده اینجا خیلی صحبت کردن بقیه اون به همه هم نکشی قد اکثر روایت هم نهار همین اشکالی که من عرض کردم سابقا کشی از خود نفس مستقیم نعلم میکنه لیکن یوبعیده خیلی بعیده ما تقدر من روایت این در کتاب مرموم کمالو دی 112 کمالو دی فه این من یروی انها سعد بن عبدالله شد سعد ابن عبدالله حدود سی سر رفاتشه این شروع با یک واسطه از نفس نرم میکنه یروی انها به واسطه لا يمكن ان یروی انها کشی این چیلی بعیده که کشی از اونه هم بکنه چون کشی شاگرد خود در رسوه شاگرد سعده نبدالله نمیتونه از کسی که به واسه سعده از اونه هم بکنه ولی از قد ایشون یکی احتمالی دادن در اینجا اصل احتمال به نظر تنمی خوبه که صحیح همون حرف نجاشی باشه رواهنول عیاشی نه رواهنول انخل کشی نصر این از مشایخ عیاشی باشه ولا یه بازن تکنه روازه کشیه هم به واسه عیاشی چون واسه تند تبقه نمیخوره و یعنی که دو داله قول نجاشی در نصر این سباه روانهار عیاشی میگم مرموم استاد قالبان این بحثات دینا. خیلی خوب شد که اینجا متعرض شدن ایشون میگه اگر اون دو سر روایت رو نگاه بکنیم با استاد بودن نصر این سباه برای خود ک و رضا ایشون میگه و من از اون طرف هم ما تو کتاب کشی مبارد نصف دارم زیادی می که قال حد دست هم این است و نصفا بعد در اینجا ایشون مباردی به که ادبه از مباردی که مرموم کشی گفته حد دست هم اگر بعد در آخیات فهمدن و مقتد آزالک ازالک ازالک کشی یرو یعنها به نفس ظاهر این مطلب این است که کشی یرو یعن ازالکه اضافه میکردن. کمو انانجهوشی <تصال> فی تاریخ هیلا کتابه ذکر کشی عنه نجاشیم می تو گفت به امام عبدالحسین عمر بن محمد نامه را نویلت کشی هم اضافه داری که در چند مورد آمده در طریق در اجازه شیخ طوسی شیخ نجاشی مذه اجازه شیخ نجاشی ایش هم کشی وارد و مختصر سازه کشی یروی عنه بنفسه والله اول آدم اخرش ایشون گیر کردن اخرش ایشون رو استاد کشی حساب بکنید یا استاد نجاشی اینا با هم دیگه خیلی نمی سازید. از فرم که که اون مقدماتی که ایشون می رویشن لازمه این که مثلا مرموم سعبر عبدالله از یک شخصی به واسطه نبدال لازمه که اینجا طبقه باشه شباید اون شخصی که از رویش نبدال ممرن از نسل نصف نصفا بزرگتر باشه لازمش نیست همچین لازم این که چین چی مطلب کنیم میشه قبول. قبول کرد درسته این, اصلا این به اسطلاح یک نقل تاریخی یعنی مرحوم سعددن عبدالله از این نفر اهل ری مطلبی رو نقوم میکنه از نصف نصفا که اون اهل ری مخاصد تعیید مرحوم محمد ازم اسدی محمد از جمعه همون حدود سالهای 289 اینها باید باشه الان دقیقا رفاتی در ذهن نیست درمون سنواتگاه باشه لازم نیست که طبقه باشه اینجا بس روایت و طبقه اینکه اینکه ایشون فرمان طبقه شنون نه لازم نیست طبقه شون باشه و هر حال ازبطی از این مطلب که این نحسن سواهی که در این پسته آمده به اینه همون نحسن سواه مح شخص دیگری بود. اسمش هم نفس باشه فضایش هم سباک باشه،, باشه احتمال داره این خالی از احتمال نیست لیکن ظاهرا اتحادشونه اما این مطلب که آیا به دخره ایشون شاگردش ایاشیست یا شاگردش تسشی این البته به هر حال ابحام داره انصافا ابحام داره سر ابحامش رو ازن هجمالا عرض میکن فردا اگر حالی و احوالی بود یه موضوع در اینجا مجلوم سراحات بیشتری بکنیم که مطالبی گفته باشه سر الهان اینه که این کتاب کشی موجود خلق داره یعنی مشکل داره درسته در چند جا گفته حدثنی نصر و که ممکنه این کلام عیاشی باشه حصولا در این کتاب کشی موجود یک نوع خلقی بین کلمات عیاشی و کلمات کشی موجود داره این هست این کتاب موجود و چرا منچه واقعا واقعا شیخو استعجال این کار انجام داده واقعا این خط اساسا در خود کتاب بوده و شیخ تسلیحش نکرده حالا یه به نام افراد شروع میشه مثل جبهیل احمد نحمد فاریابی خب زیاد وارد داریم که جبهیل نحمد اول سرده لیکن خب شواند فرقی که شا... نیست عیاشی علیشان کشی علیشون به نحوه وجاده رو دیگه از خود جبری نحن نحن این ما داریم شبازه کافی داریم. این یک بحثیش چون لطیفه پردار اینشالله محرح میکنه اما بازم نصده خیلی از بحثای دیگر ما چون این بحث نشده ما فقط در حد گفت اصال اشکال اشکال محرح خود ما هم هنوز مطلب برای ما روشن نیست این که کتاب موجود اجمادن فلس قرود داره جا جایی داره تشویش داره این جای بحثی نیتیم کاملا برای ما روشنه همه این که تفسیرش چیه چرا اینجا خلقی بین مشاهده کشی با مشاهده عیاشی شده این رو انشاءالله تعالی فرحظر الله